گویند به حشر گفتگو خواهد بود بانیار عزیز توند خو خواهد بود از خیر محض جز نکویی ناید خوش باش که عاقبت نکو خواهد بود می خور که ز دل کسرت و قلت ببرد و اندیشهٔ هفتاد و دو ملت ببرد پرهیز مکن ز کیمیایی که از او یک من بخوری هزار علت ببرد می گرچه حرام است ولی تا که خورد وانگاه چه مقدار رو دگر با که خورد، هرگاه که این سه شد راست بگو، گرمی نخورد مردم دانا که خورد. من باده به جام یکمنی خواهم کرد، خود را به دو جام میغنی خواهم کرد، اول سه طلاق اغلادین خواهم داد، پس دختر رز را به زنی خواهم کرد.